yala لنم ته اونو که از تحت ها بیزونو بکنم دنباله چی میگردی؟ هماش تخصیرم دست. هم این ارموزاده است پای اونارم همه این باکده سوی زیر زمین آمیری اونجا چیز منبیسی؟ یا باسه موشک همین بذاری؟ ببینم نکونی می دیدون تو بس میشینی که تو صف مرگ و روغن نری ها کدام کوپونو تو واطل شده گوشت مرگ روغن من که صبح تو شب تو صفم حالا چرا سر من داد میکشی تو میای نمیذاری من کار بکنم او چه کاری تو قلمت خشکیده ای آقا خشکیده برام خلقت دوت چفن اندازه کن میخوای دعوا راه بندوز تو دعوام بندسی میخوای سر سوم کنی بال، سوم کنی، داور رو بفهم به خودت میشه کنار. از کجا دستاری میشولی ما؟ آره. آدم. چی می‌دانم؟ ماکزه توش کده، نمی‌تونی منو بیسمی، بیت درک دریپ، درخت کنارم، ورشوار یکن. جلال جلال جلال نکن خود تلوز نکن خوش بارد جلال جلال جلال چونه می زنگ بزن به نرگز کوپان برنجم پیششه می ترسم سنگیم باشه نتونه تنهایی بیاره جلال بیا با کی داری عرف میزنم دوتا زنندرم با هم عرف میزنم پتنگر ایخنم بیرون اون میگه من شوهر میخوام من شوهر میخوام پول نمیخوام شوهرم شیش با شیش با میزه بسرم بسرم کنم او یکی بیگه شوهرمان نگار میکنه نه پول میده <تصحیح> استراغ سام گناه داره آقا جو با همه شوهرم از آتش جهنم به ترسیم ها بیا برزن، برو برو برو گیم, برو گیم. مردان بی آر، زنان بی کار تلفونای خرد و خرد سوژه خوبیه فکرم میکنم چاپ کنم از دست صاب کنم، حرس کنم، که ای بار تو در خونه اومدم یادم افتاد به رینجاتون رو برگشتم دوباره روسیاهی من خالجون آخی چی میگه؟ چی میدونم تابوت سر کرایی حرف داشت حالا بحانه کردی که میخوام خونه رو بکمم چند طبقه کنم از بس توام هم لجبازی خالجون آشو اینجا تو شوارت پیدا شد دیگه وقتی نمونده امین امروزا پردست که محمد پیداش بشه اون کی باشه اون وقت میشه یه چاره براش کرد تنسیکی ازش خبری گرفتی؟ چند روزی که نرفتم سر کار رفتم پرسجو کردم لبینم میاد یا نه خب چی گفتم گفتن منتظر باشید خبرتون این کنیم دیکه خسته شدم از این همه انتظار حق داری خالی شما تو درد میکنی خدا میارم خالی شما تو Tja, ja. Tja, ja. Tja, ja. Tja, یه یه نکن دخترم چی شده؟ بیگه از بستش قصده شده ایب نداره، درست میشه خانم، درست میشه بیگه از تعمل دیدن رختشو ندارم درست میشه خوش برو یه چایی بخور، حال سر جاش بیا هم تو چون شب همینچو بمون، خونه. تو باغ باق بسات تهم میکنیم، ما بزنیم یه <تصفيق> چیزو خیلی قشنگ نوشتم برات بخونم، حتما خوشت بیا آخه باید آخه نداره خاله جو. بی خودی بحانه نیاب باشو باشو من میدونم که تو داستانه جلال خیلی دوست نرد باشد اینقدر گریه نکن جلال این گونی به اینجا بیا تو دیگر در این جهان صفل پربر چه منده بود که به سویش بشه تابد این هستیه مهنتالود چه سودی داشت که باز هم چشم امید و انتظار و آینده بدوزد و زندگی مرارتبار و تحمل ناپذیران را بر آن همه نکبت و عدبار برخیشتن هم بار کند هرچه بود به پایان رسیده بود ضربه مرگ بار و جانسوز پایین آمده بود و باید هرچه زودتر به این سیه خاتمه داد هنگامی که او رفت و صدای بست شدن درب به گوشش رسید با عزمی جزم از جای برخاست و به گوشه که جامدان کوچکش پرار گرفته بود رفت Narges? Narges? 尤其 به جیب نداری ریال و میاد مجرس میکشه اینجا نگاه کن چی رو این چی اینجا با اینکم نمیتونه بخونی هم بابا زعیش شده مباش در عقب زنمن و ایال و میاد ماجه نداری چیگاه کردی چی مرگ تو دستازه دیکی حق برد حرکت کن بینم کن سرنچان مطلی عصف بشه با خود <تصفيق> این عدم اینا کشته. چرا پیاده ندیدی که جنگ سره؟ پاشو، گیرو. تو میمیری جلال. نگاه کن بود بود بود بود داره میره. آره بود بود ببینم چیکار بتینه. بس به ورهانا نزنید. نه نه نه بود بود. آرام عرض می کنم آقا جلال. حال مبارک تو رجب. بود بود. آرام عرض می کنم آقا جلال. حال مبارک تو رجب آقا امیر جلال الدین. <تصفيق> حالا هر طوری باشه به تو مربود نیست عرض داشتم اجازه میدیدو کلام حرف بزنم نه چرا نه چرا این بچه ها لجبازی میکنی مرد حسابی مشتری پاش واسطه این دسته گل آخه یه مش عتیقه و آتاشخال قدیمی به چه درد تو میخوره برای تو عتیقه هست شون میخوای به پول نزدیکش کنیم ولی برای, برای من زندگیمه خاطراتم عشقمه بگو آره از خره شیطانم بیا پای چرای قلعه عجبازی مرد؟ چرای قلعه دنده ای؟ اخو اونا تو عشقالا بیترین چه درد تو درده تو بخورد؟ مطمئن، مطمئن باش، میرسی من عطل. سلام علیکم عزیزان سلام چطوری حاج چطوری قربان شما خوبی قربانم شما اینا خوبن دواگه تو دختراشو آوردید ها دختراشو آوردید بذار جی چی باد نشسته میشه انشالله که تو دیگه باد نشسته بشی سلامتی خوشحال شدم دیدمت قربان شما خدافظ آقای گلشنی چطوری اینا خوبن او قربون مرغونده قابل ریش بوده قبران. شلو حوادث بر بال باز و ما هم به گردشون رو میرسیم شما چطورید؟ خوبید؟ خیلی، باز البته نه بر بال باز رنگل، رنگل میگه شد بابا سرسده اینجا نمیزه بریم که جایوشین یه چایی چیز. یه همون جاملیست که خود من باید یه مقالش کنون نبود توی بافتم یه چیوه شده بخوری که رست <تصفح> کنونم <تصفح> توستاد من آوردی توی نرده هنوزم شاگرد خودت هم مستا ولی دیگه عاشقم نیستی کجا رو بعد رفتم نمیدونم بعد نبود اما میدونید اما چی؟ ها؟ نبینم، تعدلین ندار چپ کنی آره؟ به خدا باور کن توی این بگیر و بند شلوخی جای مناسبی براش پیدانه میکنی م بابر اقیه من بردون؟ نه بابا سردبیر میگه مال گذشته یعنی چطوری بگم؟ بابا بالکل تو که فرانزت خوبه خب بشین دوشه این گونه ترجمه تو بکن بابا داره من افتره دوها میکنی؟ آره؟ خدا بابر کن مناسب و حوزان نیست مدافق چی شد؟ خجا؟ میرم برمیزم اینقدر ناخونگاه تو نخور دلاخره چی کار میخوای بکنی؟ کار میخوام بکنم؟ همین الان میخوام از این اتوبوس پیاده بشم و پشت سرمم هم دیگه نگاه نکردم. مگه قول نداده بودید منو ببری کانادا؟ مگه شما به من قول نداده بودید من رو ببرید کانادا؟ چی شد؟ چه بداره رسیرا کرده بودم اگر عروسی کرده بودم تکلیف الان چی بود؟ واخه فکر میکنی کانادا مگه چی داره؟ بریم اونجا چی منتظر ماست؟ جز بدبختی و بیکاری و بی پولی چیز دیگه مگه اونجا دارین؟ قنادا چی داره؟ اینجا چی داره؟ من اینجا هیچ دل بستگی ندارم. من نمیتونم اینجا بمونم. حرف آخرام اینه. من میخوام برم خارج. میفهمی؟ میخوام برم خارج. یعنی بیام اونجا خود پناهنده بشم، خودمو بدبخت کنم، تو هم بدبخت کنم، بی پول و بیکس بشین اونجا که چی بشه آخرش؟ من حوصله حرفای تو رو هم ندارم. فیس تو بعدیم پیاده خالص شد. آقای راننده بیس لطفاً. وایسو حالا. زاکو؟ یا این وقت با همین؟ بله باری چالا بسات، باری چال، اکشبان ایرانی، باری چال، اشکام نتونست رنجو بکنن، باری چال، باری چالا بسات، نرو، امین جو بیم، فش فش فش فش، جنرال در میاد، مانگله درست کنم عالیمیو، وتو وتو سلام قربان از سر العلاقی از سر رحمم توکلم جلوی جلوی یه خواهش ازت دارم یه دقیقه میخوام با هم دوستانه بریم تو خونه بشینیم گپی بزنیم صحبتی کنیم این قناسی رو حل کنیم صفای کنیم حالی بکنیم با هم دیگه جلوی من بیام با تو صفا کنم اه. قناسی رو حل کنم خدا میدونم کلانثریات دستت آرز میشد رو هر غلطی دلت میخواد بکن بعد وقت بیچاره پس سردا میوفتیم ارش خورا می خورن؟ سلام سلام جلو جلو جلو تو رو خدا این بچه میمونی که باد کنکش رو باید برده باشه <تصفيق> چی شده؟ خیلی ناراحتم چه میدونم والا شب تا صبح مینویسه صبح میبره روزنامه بعد با لبالوچه آویزون برمیگرده بشرایی آقا جلال که خیلی قشنگه من که همیشه لذت بردم روزگار عوض شده دختر جون جلال بین اون که اونا میخوانه خودش سرگردونه هرچی هم بهش میگم میگه والا رکاب نمیده وقتی میخوام بنویسم تنم داغ میشه سرم گیج میره نبزم نمیزنه قلمم میخوش که چی میدونم شیر نفر میاورده این شیر آب کنه همین روزاست که خونه رو آب ورداره آشنایان ره عشق خون بخورم آکسم گرب شکایت توی بیگا باد روم بعد از دست من و ظل فچ و زنجیر Chando Chanda, på y kåme, de la dee, wo, wo, chanda, come, de yvån röväm Chando chandad لا مكنين شامبيوني جلا اه ليه مياش صابونه باخري انا وارزش مكنم اه انتي ورزه شه دیگه، کامپیوتر نیست که فرنگی ها بسازن واسه موچ هم خوبه، کانسنتریت میکنم چی چی یعنی تمرکز اعصاب بی ثبات زن باباپام بلایی ها سلامون علیکم جناب جلال الدین خواه شبه اول تو، سرتون ندفتیم پایین اومدید خونه مردم که چیچی؟ خر، شنا سابردم که تکلیف قناصی این دیوار منزل بنده جناب لی روشن بشه البته با اجازه کی قانون ملزم فرمایید قربان قناصی این دیوار میبینی مدتیه که مالکیت بنده رو نسبت به ملک خودم به کلیت ببردید آقا بفرمایید بیرون دوباره در بزنید ببینید من به شما اجازه میدم وارد خونم بشید اون وقت بیاینجا شرط و تفقدی رو بفرمایید آقا عجب حرفی میزنید جلال دل هر بحثی ببین بسمونده روشن بشه بابا اگه 30 سال پیش داره صبر اینو برداشت یه جوری دیگه به صبر رسونده من چه خاک بدلات تو سرم بیریزم راه یافتم آقا جان بابا به زب برسن آخه چی چی رو به کارشون بررسن صبح اول وقتشون بکنم تو؟, تو این نفرمایید قربان توهین نفرمایید این یک امر اداریه اومدیم یه مدری بزنیم یک نگاهی بکنیم بریم ممانعت ندارم فرمایید خواهش میکنم استفاده می‌کنم میکنم؟ بسیار خوب ممانعت نمی‌فرمایم بفرمایید سلام علیکم سلام بچه‌ها مشاالله مادر شما پدر می‌می‌کنید به نفع شماست اینجا رو بفروشید من به خیال راحت بکوم بهش آپارتمان سازی کنم قیمتش هم هر چی بفرمایید رو به چشمم تقدیم اگر بگن گلوله میگن توخ به چشمم مگه تو نیومدی اینجا قناتی خونتو مت کنی تو اومدی اینجا خونه من اچنگم در راه بیافت بزن آقا راه بر نندانی فقط یه دقیقه اوه ما گاز ندارم دیگه آقا رئیس سانتو در طونده لازم میشه قربت برام اجازه تمی فارمون بکنی بی بی اه اه اه چی کار داره میکنی قرار بود مت کنی نه کسی به بکنی مرزو به همه زنی برای مت کردن لازمه جانم اداره چه در بیانم لعنتی الان در باشم بیشه جلال تو رو خدا بایش درگیر نشو بسه کارشو بکنه و بره چی داره اینو همه کارک نقشه هست میخون کار دیوار بکنم عربه بیا یام عربه بیا پف پف پف چانل <سؤال> اوه بچلان تو دستش میشید Ya danışlarım diyorlar. Ya danışlarım diyorlar. Kaçınırım yapıyorum. O da geçti. Lara Lara ay sütünü fıqratım. راننده رو کردی بروی؟ بابا اون که آلو. نزد به تو، تو زدیم اون قربون اون شکله اونو نمیگم که جلال الدینو میگم حالا کجا درد میکنه آم؟ نمیجام همه دست نزد را... بابا، <تصح> ما رو بگو اصول الله بشدیم آم این دست نزدونه که بما بیدیم ما رفتیم بابا نخواستیم نه چی نیست، فشار خونه دفتن شدیم تأثیری، بگی بخوا بینم بگی بخوا باب هزار دفعه به تو گفتم جلال آدم خطرناک و بد اخلاقیه جلاله نمیگم را من میگم باز خوب بوده برده. به موقع ترمز کرده بله الان تو بیمارستان افتده بود که برده بودی پدری ازش در بیارم که تو تاریخ رو هزار دفعه به تو نگفتم که بیگدار باهم نزن خوش نمی کنه دیگه حالا چطوری دوان توی مغارش میاری؟ بابا سرم این نمیتونم بابا شیشت ماشتری فای مترخ خبیذ آ دستم چه خاکی تو سر مگه زوره آقا جان نمیخواد بفروش من فهمیدم چرا به من چ زوره اما به تو زور نیست هزار جور خفته پته اشغال پشغال و اونجا زل کردی دور وره بازم مثل سگ کتوله جمله ی ولیدا میوفتی وقت من میزی من نمیتونم باها رو نمیتونم من وقتی چشمم به این قربونشوارم میوفته ها آ, آ. دستپا میلرزی من میبیدار میلم لگی تو من داخلی چشم به این باق میفته آه آه همینطوری میلرزم میخوام باق دلسته وحبه جناب هشمت الله خان نجوا. سلام علیکم بزرکتون با سلام خورت با شد حال ممارکتونه عبی بو جمع سایین کتابی دارم خوب این ها قدیمیه, قدیمیه. بعدیغه است با میخوام بفرشینه بله بله بله بفرمی بفرمی بفرمی بله بله بله بفرمی بفرمی بفرمی چه قایش ب بفاید بشینیم ببینم چی هست حرض کنم خدمت شما اجازه. قدیمیه اجازه بدیم به تاریخ چاپش نگاه کنیم بب قطیقه از قدیمیه ناصر دین شاه حتی دورتر ای قربون صدات برم مادر دلم برای تو یک ذره شده من که نمیتونم با این پا درد و کمر درد بیام پیشت چی نه نه اینا رو ول میکنه نه دل از این خونه میکنه چه گفتم که فرامرزه بیا با حرف بزن من نه کسی حرف میزنم نه کسی دلار میذارم این اش به من مگه تو پدرش نیستی پدر هستم و بانکه مرکزی نیستم گیر کرده میگه اگه مالیاتم رو نده هم تو هاکل میفتن رقشوری با کرده رقشوری های امریکایی رو میشوره وقت من باید مالیاتی از اینجا بفرستم ببین عزیزم این نه حاضر خونه رو بفروشه نه لوازم خونه رو چی؟ جلال هم. میگه یه نفر رفتی تو مغازه هر چی داشته برداشته و برده چشمش گوشه میخواست نره الباتی واسه مغازشو بپاس بابا باید کمکش کرد به جانوین زنگ بزنم به جریگوری پک به کی؟ جانوین قهرمانای فیلماشون نا سلامتی تو بدرشی بری به اونا زنگ بزنه من اینجا پدرشم اونجا که نیستم اونجا ننشم الو Älo, så att slut. Hatten av mig var ju bara skadlig så det gick. Dus, dus, dus, dus, بره بره می سو آمده برای رو بر با کنم پاین، دو چون چیست؟ شما چیستی؟ آفرین سر جسوس. سلام. سلام. شما چه تلفن زدی؟ بله بله من تلفن کردم به کمک میکنه قربون دیگه پس چون چی میکردی؟ از تاسه دوست جناب سرمان. دوست خو بود خواهیم. <تصفح> با بابا از خونه که دستم خورده اه بله. بله. زاهرا اینطوره ولی شاید با تاش فرمانش و با دوست کردن رفتن؟ ها. گربون بنا دادن که. شما چه زندگی میکنی؟ بله ما دو نفر. شما من خارجم هستم. اسم شما؟ من الف می ال جیم شوالی هستم. شما شاعرین؟ نه. من پاپرک نویس هستم شما نویسنده؟ بله بله. بله خیلی خوش. آیا شکر میکنم برای تو؟ من نویسنده ها را خیلی دوست. خواهش میکنم لطفا. خواستی برای نویسنده ها؟ آیا شکر میکنم مرغ من فکر میکنم که این اسم نزدم آشناس من که شما رو. فکر میکنم خونده باشم بله. البته این به زمان خیلی قدیم برمیگرده قبل از دانشگاه افسری کتاب هایی مثل تبهکاران بله زندانی فراری بله بله, بله. اتاق خلوت امشب دختری میمیرد نمیدونم شاید اینا با این کتابا رو فکر میکنم کنم شما در دریلت همشه که خیر ولی فکر می کنم بفرمایید آقا داستان های پولیسی به خصوص نوشتهایی شما رو خیلی دوست دارم از شما شغلتونو رو بر مبنی مطالعاتتون انتخاب کردیم شاید نمیدونم سردار اکبری چیزی پیده کردیم؟ برمان یه چند جای پام هم بود اونجا قربان آه لطف کنین قربان زیر زمینم گشتم کسی نبود سلام سردار سلام سردار اکبری این فندک با هرمز با هرمز آقا همیشه مسته همسیاتو نمیفرمیم؟ بله, بله بله شما با ما مشکوکی؟ بله آقا مشکوکم مشکوکم بنده شغل چیه؟ بلا شغل معقولی نداره یعنی مقتصد تانه بله ممکنه منظرش به من نشون بود؟ کهش بکنم بفهمید دم درد هلا بابا برو به خواب نسوشم بیمانو بین نمیکنه نداشتی این وقت شم بله بله گلنشی که باباتون ساخته شد فرمیلش نشتیم؟ آقا صحابه این خونه شما هستیم؟ بله غربان چاکر شما بحرمه هست وقت کلون میزنن که بوش بره تازگیه ها موت شده ترون آقا شما رفتدی روی دیوار؟ روی دیوار؟ نه خیلی اصلا سن و سال ما اختیزا میکنه که بالای دیوار برم روی دیوار رفتن به سن و سال مربوط نیست من خودم دیدم که ایشون بالا سیمو داشت خیشی میکرد جا سبان من اساساً از دست این آقا شاکی هستم به قاعد ملازم کنید بفرمید. به حریم خونه مردم وارد میشن شکایتم. هم میکنه میبینین جلا شما داره به من بفرمید. تهمت میکنه بفرمین بفرمین بفرمین این فندک مال شما بله این فندک مال منی ولی تو خونه ما بود ملازم فرمین قربان بنده این آقا سالیان درازه که سر یکی که هر کی به زبون خوش بهش میگرد آقا من بیا این یه چقناسی رو بفروش به من خود راحت کردن نمیکنه که نمیکنه ملازمه بفرمایید که من چه ادم بدی ام قناسی رو نمفروشم بشون قناسی رو با گذار به ایشون نمیکنم که ایشون آپارتمان سازی کنه بفروشه به مردو <تصفيق> عزیز من این حرفا چه ربطی به دوست داره چه میدونم از آقا بپرسین که نصف شب پشت اومده در خونه مردو شما چرا تا این ساعت بیداری رو کپره میکنید تو چرا بیداری من دیگه مطالعه می کنم، تحقیق می کنم، ملم جدول حل می کنم. جدول؟ بوش همه ترونو برداشت. جدول حل می کنم. زهر سالم متجری جریان شدین؟ بله، یا این آقای نویسنده دچار خیالات شده، چون که با اومدن ما می خواست واسه نیمه کاره پلیسیشو تکمیل کنه. بس دیگه پرونده پیگیری نکنیم. نه آقا، خلاصشون بدم. ها که هست؟ میراد صورت میزن مورد منتفیه مزرست <مزرازم> گلچنی، این یه قصه واقعی پلیسیه میدونم بقید تحجیب میکنم چجوری شد که یه شب از فضای ادبیات فرانسا و داستانهای شاخت دخت های قجری رسی به این قصه های پولیسی اگه خود کارکتر سازی کنی، شخصیت سازی کنی خب این قصه قشنگی میشه ببینیم یادم یه روز من رو آوردی توی بخش سلام ازدم خبرها و تیترار نشونم بدی گفتی میبینی؟ گفتم آره گفتی خب بره بنویس تو میخواسی رئیس بخش سیاسی بشی من جا نمیخوام بشم که فرقشیه. فرقش تو اینه که من موقع ست بودم و سبای تو گلاب انداختی اومدم بالا تو سنگینی استاد تو گلاب به من گیر نمیکنی دست سرم بری میکنی؟ خیلی بیانصافی این طور نیست من ندونم که جنمه نوشتن داری <تصفيق> دارم معاول میگم اصلا آشق ولی چه که این سردویر ما با معشوقی تو میونه خوبی نداره و چون سردویر تو با, با معشوقی من میونه خوبی نداره بزنم به چار تهرونیش میشه این دیگه میگم چه طوره که بسینیم یک که ببین برکنیم ببین من باید بنویسم اگه ننویسم تو زیر زمین بوی نامی گیرم میفهم باید بنویسم میترسم که میگم چطوره آمش... بری؟ چطوره بری؟ اه داری من از سرت با هر جا میرم من از سرشون با میکنن؟ من نه تو بخش سیاسی کار میگیرم نه تو بخش آگهی یک کاری درزم بده مغزم زادو برد کنه به چم بنویز آقای برچنی به چاب کنه آقای برچنی بورم به چاب کنه مراجعه برد ببرم آقای بارمز چاهده بخور احسا خود تمنقدر خراب نکن چی فکر میکنی؟ تا لوجو نه نه سام بجی که تو منو چا کاری می‌کنی صاحبای ما شعر به مرد آخه تو چی داری بر علی هم بگی همه چی افترا تهمت ضرب و جرح تو حالا میخوای به پلیس مراجعه کنی بوی پیفاپ ایکرتی گرفته پس دیگه چیکار کنم بابا خونه خودشه اختیارشو داره چطور شد چطور شد حالا دیگه خونه خودشه چه تو موقعی که صحبت از کتاب و عتیقه و عاشقال پاشقال میشه آم از لب و یوچه آقایون را میفته اما همچی که صحبت از خونه و زمین و کار من میشه خونه خودشه اختیارشو داره مردشون این رفاقتتونو ببری مردشون این دوستیتونو ببری دلم از جفتتون به هم خورد اقام میگیره ازتون مردشون حیکل هر دوتونو ببری بارمست بارمست دست در نکنه عجب موزه دست ببونه عجب آدم این بی نزاکتیه اون آقه منکسره یعنی این هفتاد سالش همینه چی بابا هفتاد سال هفتاد سالش. سالشه یکه تا؟ اگه به خاطر اون چندرگازی که اینجا داده بودا نبود قرار به همین دم در خورد کرده بودا. این یا آدم از خود مساکریه همه عمقش همینجوری بوده چی شد قسم هم چی شد ایچی از نوم آمدم بابا آمدم. هیچ از نام آمدم بابا آمدم سلام جان سلام تو تاله کجا بودی؟ به سجا من تلفان کردم سجا نبودم، گفتم، رفتم پیش گلچنی تو خدا یه دقیق وایی سا چیه؟ ساکونه این هرگز بازم رفته سراغش دختری بیچه را را زله کرده چی؟ سبخونه این هرکز کترکاری رانند آزها به من چی رفتی اگه شوهر هد یا نیست میاد یا نمیاد یعنی چه هم پوزی ترجیه تخزی کن برمیره از خاطر زلیلت بکنه مال مردمون چرا میم در زمین؟ خبر سیده تو بلند کردی اختیار مهل کم رو دارم اینجا نمی خواهد خراب کنم چند طبیقه بیستن بره یالش هم بریزیم بیرون بارده شد این مرکتو ببری با خوادر برین بیرون جنگوه اشقال دوری بیرون بیرش به منی با کجا بریم بیبری یالشو تقلیق کنیم بریم اینجا مهل کم اختیار سویرم خیلی خب بیرم چرا درم بزنیم بسی که از سر را آوردم هوتل که نیست اینجا زایده غال لکن بیو پایین بیرم سالم آقا جالم شما چی کاریم؟ بیا پایین تا سلام علیکم. حالا جنب کنی مرزی میرم. آقا جان، خیلی نااهه که بعد ذنس زندگی رو برای ما اصیل کرده. خبر داره آقا را این دفعه. جنب به تشکلارو. نه نه نه. سلامی. تو چه اینهمه داد و هول می‌کنی؟ ملک من، ملک من می‌کنی؟ اصلا تو الا کلمه شرافت، غیرت، تعصب به گوشت خورده؟ به شما چه رابطه که خورده یا نخورده؟ تو چی هستی؟ صابرکین جان تو تو حالا تو زندگیت خجالت کشیدی تو با اجازه کیونامدی اینجا اسباب مردم میریزی پایین داده و میکنی یه زن بی سرپرست اینجوری عذاب میدی و ناراحتش میکنی یعنی چه یعنی می‌فریند من اختیار ملکم نباشهم عجب حرفی والله بابا شما با اجازه کی وارد این خونه شدی اون به تخطی دارم اینا هم مهر امضا داره قانونیه زعمی راته بله تو به تخطی دادن بیا از پا باساسه مردم بریجه بیرون چی دلت خواست به همه بگیاره آره ببینم اون که تقلیتون ببینم اقا اون که تقلیت بهت بنام ایشی ما چه را داره ها با داره برین بیرون جهگونه شداری نهون هده سخته هلان داره شده این بچه تقلیه هست جهره صنف بیکنیم خاله بدم تاقه بکنم بندازم تو زندون پدرت در بیارم پیکشور نرگس اسبابات جمع کن ام خوب شد. مالاش؟ بله. دیواره عجب شیکمی داده. خب کهنه شده دیگه. دست درد نکنه. دستم اصلا خونی نگادن. یهو منو برم یه کش زدم. حالا یه خبر بدم که. خوش خوش پسرا. می‌بینی چیکار کردی؟ بابا اصلاً نمی‌خوام. یه دیش بزن برام. ای ای این سرچن نیما، شماش خلا جلووازو قاپش. تو نمیبینی عادی چیزه. دختره رو شکسته. خب میره. بس نمیخوایم کمک کنیم. آقا نمیشه بهش. بدون شیا پرده بابا. ملاقات. بله. ساختو کوچو گذاشتی میخوام آواذو بکشم. تو میخوای آواذ بکشی؟ آها. آقا جون یک صدا کن بیاد آواذو بکشه. بابا چهرش شهر که نیست. خودم آواذ بکشم. به جهنم او چیه؟ سطله؟ تو عشبتخونه است چی کار کرد تو خودم بیا نرگیش شو یه مادر بریار خودت بسلیقه خودت بشی من برم یه سر به Thank you. است. وقتی ازدن جوان تو خونه هست نباید کسافت از سری کلمان بالا بره تو فردی که میمون که عب نمیکر تا درد میگیری پا درد, می درد نمیگیرم میبینی تو رو خدا این بچه هاست خوی بچه این نه هر حالیشه نه به فکر سلامتی خودشه ست تا بچه بزرگ کردم هیچ کدومشون اندازه این منو عذاب نداد. عب نداره خاله کارم که تموم شد میرم کمکشون سه تو بچه تربیت کردی؟ یکی از یکی نامهربونتر بیمعرفتتر بچهات خارجه تحصیل میکنن رخت میشونن رخت های خارجی ها رو تخصیل خودته یه بارو تلفل رو جواب بده خب خودت جواب بده حتما با تو کار دارم یه گروه خیش هم نداره در کن و برقنا ما یه افته راحت بشیم دستش آره اون سلام سرم, سرم برود دارم برای شما میرسید نه نه هستان کشی داشتم بعدم باشتم آبا وز خالی میکردم اینی که به نفستم فست افتادم و به خست فست افتادم جورم نه نه خواهرزاده خانوم همه نه آقای گرچنی آره دیگه همون که شوهرشن روز ایمه ده ای آقا قرب ندارم روز اما نویسه معروف برای آبا وز نور بکیم آخه این وقتا زندگیش آنچنان مسئله نیست که من بیام سوشه قرار بودم موالبه بنویسم که جانم <تصفح> باشه گلگاه <تصفح> <تصفح> زبونه برای احسابت خوبه بخوری آخه ایان با حفای بنده است همه سوان امسان روهم بوده حالا آخر عمرید بوده گفت زبونه ورده که تسکین احساب بده متشکرم. بسید بله جانم بله نه نه هر طور که اول میخوام این گلگابزبونه اهدایی خانم بالا بکشم بعد فکر کنم که چی کار برد؟ چاپ نکردم؟ نه نه نارب نیزم، نه نه بابا نه پس انداز دارم، جنجم هنو نشد. برنامه فردان پره، از یه موقع دیگه نه، اونجا مهار پا بذارم. میچه؟ میخوام برم تو تیر زمین، اوتا رنگ کبوتا رو بگیرم دنبال مش این سراخ و سراخ و دو شروع کنم سازددن کاری که همه عمرم کردم و بالاخره هم پقی نشدم شبا معرومه دیگه انگوشتم لای کتاب و حافظ است و با خواجه راز نیاز بکنم گربرو تو عمرت یاد پرگرد یچاد دل بی رحم تو سپیر نبود مندی وانه مندی وانه چطور تو راومی کردم یچ نوع سرما al-rayyan nabu yorabi yorabino ninayen o cheduan tasdat nakone halicin وقتی قم گینه، این چا دو بیروند. بیس سار بیشترین که این قوارگاره که رو آن انداختن. Fasta i dödet kunde jag inte. Om du tog keso. استونه تونه بینداز نازنینم محجبینم تو پیچ پیچ خمم میخانه بینداز با غزیز من رو خدا بیاموزدش عجب صدایی وحشتناک سیگار میکشید رسید جلال چی شده گزارش تمام شد. از مرگ میترسید؟ از مرگ؟ <تصفيق> همه میترسن. <تصفيق> خب بله، برای خاطر همین است که همه کوشش میکنن میخوان باشن، مونده باشن، قلنبه بمونن. اما من برخلاف عقیده خانم، تخم مرغ میخورم، مربا میخورم، چری میخورم، گوشتم میخورم، از کلسترول و اسیدوری که تراگریسینم نمیترسم. زن با وفای من یه چای بزرگ اونقدیو. چای اونجا جلوی یقه کرده عزیزم یه چای بادی آقای پفرشی. سلام علیکم. سلام. استاد جلال الدین. آلوش ما چطوره؟ با چطورم. خیلی ممنونم. میدم که خوب تو پول غرب میخوری نا؟ بابا کدوم پول. اون چه مال ما نیستش که خود ما زداره. تو بلاخره میبینیم. مقط دیدنش مال ماست. ما نبینیم. <تصفح> آه... پوستاباتون ببندن؟ یه اه... مغذاری میذارم باشه. تو بالکش چی کردن. Okej. till en gång, så محاید خدمتون، پنزه هزارتون، سه سالم هست اگر هم بیشتر بخوایی، با یه مضایی مدارک بیاری تا بتونم بردرس کنم مدارک چی میکنم؟ مدارک ولو فوتیگوپیس، زند هست، کشاب و غرف هست، پاین کار هست نه، نه، میشه نه، میسه همونم بردرس خانم، خب، تاییو درسان نکی؟ نخته اچون خیف نیست تو داری گریه میکنی؟ من مزاحمی شما، مزاحم ماو خجال ولا. مزاحمی آنی چی؟ اینها چی میزنی؟ منو جالبی همه اسلار کردیم که تو بیای پیشمون من مگه نه؟ ای که اگه من باد میام. دیگه خواهد من مزاهم به شما نمیشدم اگه چرا عزیزم محمد حتما میاد فردم جلال میره پرسجور کنه نبینیم چی میشه دلم نمیاد آقا جلال وقت نویشتنشو سر به من بکنه جلال چیزی نمیمیسته چیزی نداری به نویسته جلال اومد بله یه روزی می‌باید تمومی شد گنتی نبود؟ چه آبای خوبی؟ به به، چه آب زلالی؟ مرگه چه خبر؟ تو اتاقشه آشوارش شوهرش خبری هنوز که نه جلال تو خدا وقت پیدا کردی؟ بارو دنبال این پسره دختاری داره دق میکنه باشه. باشم راستی جلال، ام. گلشنی تلفن کرد چی گفت؟ گفت امروز بعد از ظهر تو کافه موسیاباران منتظرته ایو. چیه؟ این چی؟ میخوایی دستباه من رو جمع کنیم به این خانه سالمندان؟ Det är این چه رفارسی یاد بگیری؟ نه من می توانم نویسنده و موزیم باشم. یا بطالی بخواه بگی؟ فارسی شکر هست؟ خندوات هست؟ خندوات هست؟ شطلبه؟ شطلبه؟ شطلبه؟ اینچ پس و نفشی می آید برای خدا بارو به کارت بره. این هم تا رو ببینه شروع شهر گفتم شهرش دیگه شهره را اگه صورت چی خوبه رجب شوارش هیچ کاری نکردی؟ تو فکرش ازم حتما دنبار کنم خاطره جمع باشی راجب کارت با سرده بشت صحبت کردم به رو انداختم وازم که شروع کردی جلال ورشانی تو مثل اینکه باعثی من بدكره برای تو تاسفم تو بی خودی برای چی میره رو میندازی به این اون تو خودت انگوشتو دل چرخ من بکش میدی من آدمم که دو کلمه با حرف بزنم بذار باشه برای بعد. این اینجوری هم برای حیثیت من خوبه من تو بی خودی نمیری به این اون رو بندازی بله مرسی سپریسوی آلی دست درد مکنی اینم درجه یک اینم بارون اون چوب خط من قلم به کش صورت سامانو بیاد جلالم چلال قدیر هنوزم سپریسوی بارون حرف نداره مشحالم کنی عالیه. آلیه شایدم قهوه اولاخری موش نکنه یکی نمیخوای بیایی باشی برای آدمی به سن سال من گوشه ی دینج، گوشه ی آخرت ده اتا شقدر تل اصلا خوشم نیومد جلال شد <تصفيق> <تصفيق> بلاخره به حرفم گوش میخونی یا نه باشه برای یه وقت دیگه چیو باشه یه وقت دیگه عزیزم؟ <تصفيق> میدونی من چند نفر آدم رو دیدم به چند نفر رو انداختا تا تونستم همه جا داره صاب کنم تا بقبلونم که مقاله تو رو چپ کنن گرچنی تو برای چی میری اینو اونو میبینی که مقاله منو رو چپ چرا رو میدازی هلکه مقاله خوبه چپ بکنن هلکه بعده خوب چپ نکنن معلومه چپ نمی کنن. چرا نمی کنن چرا برای اینکه به درد الان نمی خوره. این موضوعات عزیز من مال سی سال پیشه شرایط الان عوض شده چرا نمی خواهی متوجه تغییر اوضاع احوال باشید به بیرون یه نگاهی بنداز به دور وقت بر... خودت یه نگاهی بکن خود اخت میدم که من چی میرم بلاخره جلال من چی کار برد بعد جلاله به جسور به این شیر خراب لکن توی درب داهون اعصاب خودت کن. تنها راش همونی که بهت گفتم. یا باید بندازیش دور یا یه نفر بیاری تعمیرش کن. حالا خودم تعمیرش کن. جلاله، شعر به نکن. این کار کار تو نیست. یار چهره می خوام مثلا شیره جت نیست اما کار تو هم نیست گفتم خودم درستش می کنم ا چخواس یه دنده کل شک چی بگه <سطور> برو بابا منم گفتم من تو کوشش میو یار که می ده سرش می نوزه میاد ولی نمیتونم منو کارام برسم برو بخونه زندگی درد بله، ببرم. ببرمه. ببرمه. حادیش. سرهنگ؟ آه. حساب کن. چی؟ ما میخابر خونه رو بخری برو درستگولو من بدم. اگه من خودم تنها میخواستم برم، پس شما دو دوتا سرهره برش اقام خودو میدونم. در ملعه عام تربیت داشته باش. به هرمسیان، عدبیاتت خوب نیست. دیگه شرا دیگه خفش آقا. ببینم؟ تو عتیقی این بایده چرا؟ با هرمانسیان، اینقدر خسیص بازی در نیار پولو بده برین، بعدن حساب بکنیم چقدرم شما دوتا حساب کردید؟ آقا چه هم میشه این گلتون؟ حالا یاد پیری افتادی تو که تا حالا زیر بارش نمیرفتی چه بخوام چه نخوام هست تو تاب داری همه خاطراتم هم شست شد دیگه نمیدونم مغازه بابام کجای پامنات داری Harusin, som är känd جلال با این حال چی میخوای بنویسی؟ نمیستیش؟ بخوایم خاطراتش شده شده هم به نمیستم بخوایم به نمیستم بخوایم به خیلی خوب من میرم برات میرم قلم و کاخذ میرم برنیجا بفرمین بفرم. سلام هستم سلام داری کن سلام. سلام. سلام. سلام شنیدین بره. جلال خان که سالت دارن آمدین برای عیادت خیلی روت فرمدی آقا جلال الان بجا هست؟ بالا هست. بفرمایید بفرمین بهشینین مردمی را بطه داشت باشا مرگز جان ستفه آقای اون راه نمایی کن چه نیست بفرمایید. که هستم بفرمین جب سنگ خواهش میکنم استدابا خواهش میکنم استدابا خواهش میکنم بینی؟ من آشده این آمی بینم این ها شکرم من هم آسیق چهتا آباو مجله های قدیمی هستن که تو زیر زمینی خودم بابا تو بیامورزه آب افتاد همه آب بر نه آه چی به آبور بر اطیقه که آب نمیبرستان جاشونی آجی به چی به تو زمین نگاه که شیش دست که بالا میبینی چی چی میشه دارم بینیم چی دیگه خوشی گروه با چاده دارم بریم <تصفح> Det var det. Kan du att det? En gång har jag gjort någonting. Åh ja, jag har råttel. Salaam. Salaam. Salaam har med dig. Salaam med بفردو ببرو بردو آره شون بزنه خود دست روید آم نیست آم نیست آقای باهار ماست آم چی دیشون آم شما با سرحل اعادت من ده بله بله ایشون از روشن فکرهای قدیمی هستن چرا در خدمت بنده هست بنده کتاب فروش هم خربا هم کتاب فروش هم هم کتاب خرب اینشون یکی ای از کن نمیسنده بزرگ دنیا البته داره چیزی ننوشتن ها انشالله زحب... بعد هم می نوشتن هلی، آقا می نوشتن، می آنم خیلید من ده شکر خب خدا بعد همه انشالله بلا دوره ملازمی فرمانی که نفس رو کشنا ما نوشت افلاوی شما افلاوی شما افلاوی شما آعزی رو میکنند که های ابن الوقت دروگو های حرامزاده یکیدی ببین، جلالجوان، قربونو شکل ماهد دارم من به انوان یک همسایه قدیمی که خودت میدونی، چند سال افتخار همجواری تو رو دارم آمدم، میخوام یک دو تا کلمه باید خصوصی صحبت کنم <تصفيق> بله، چون دم مرگم رفتنی هستم خونمو بفرشم به تو، آپارتمان بسازیم قولو پهنا بندازی به مردم دو. خو میری به مرگ سرحنج مطلقا هم چی نظری نداره. ابدا ابدا ما یه پیشنهاد دیگه ای داریم که عرض بکنم. <سؤال> بله بله میدونم که خونه و اسباب اساسیه منو بخرین با دو تا به پول نذیشش. ابدا ابدا ابدا نه ابدا ما فکر کنیم که نکنه خدای نکرده دست شما تنگ به پول نیاز داشته بشه. نه آقا پول نمیخوام. خونه و عطبابا ما به شما نمیفوچن جلالجو قربون و شکل ماهید برم این خونه داره میریز پایین مکتا خبر نداری آب افتادی تو زیر زمین پیر و آب برده فردا فسرده تا خراب میشه رو سر زن بچه کانم اون توفنگ قدیمی منو بیار توفنگ داری چی؟ جزو از آسیای من یه توفنگ قدیمی بسیار یه هست میتونه تنه هر ستای شما رو سر خانم اون توفنگ قدیمی منو بیار بله. میخوام ستا گراز پیر شکار کنم توفنگ برای چی شو. توفنگ وردار بیار چه توفنگی؟ توفنگ منو بیار میخوام را کشم ایمی زممت شما وقتی از این فیلمی شد نمیلی گوشی کپ مارگش بذاره. کوچولو نه داری خونه جوم. چرا با من یه سمیرم خونه همی جلالیدین رو برمیگردم طور شده نمیدونم خانم زنگ زدگاه حالش خوب نیست میگفت داره هزیون میگه سکتا یه چیزی که نکرد که؟ نه، فکر نمی کنه با اجازتون، خدا نگرد ببین گرشنی؟ بشو بگر مطلب یه چیزی باش، حالا چاق میدونی مچچچ نجس بله وقتی شواره تو من آینه وارا خودت رو بذار خودت قهوه ما مو آتی و اون چی دارو رادیس کونند اینجا برای من مالاتش خوبه میتونم زنی کنم. چی کار داری؟ میخوش صداش کنم نرگز خانم نه نه صداش نکنم باز باری بوشه بشینه به گمگشتش بکنه تو هم گمگشته داری؟ یا باز اومد اینجا در بارده واقعیت و خیال با من حرف بزن نه نه نه من اصلا نایمدن راجعه به واقعیت و خیال با تو صحبت کنم میدونی ما راجعه به این قضیه سیاد صحبت کردیم فقط اومدم اینجا حالتو بپرسم باشم میخو نه نه لاوانه میخوام را بندازم فقط میخوام ازت خواهش کنم برید اونباره گمگشته این هر게 به دردت نخوره میتونیم مطلب یه فوق العاده خوب جورنالیستی ازش تهیه کنی خیلی خوب خیلی خوب مثلا فتلگ نمیخواد بگی من اگه بخوام بنویسم میدونم چی بنویسم چهجوری بنویسم چهجوری بنویسم که چاپ بشه چهجوری چاپ بشه شما تکه مشکلت خودت است چه گشی قبوله قبوله قبول همینجوری میگی قبول یه ما خواهی ما نو دستان بسیم نگه از ده ترس و واهی نوی بخوام بگم نمیگم نه نه نگونم بگو علی خیلی خیلی حال باشو سرسورت تو صفا بده هم نگه بگم یه قدمی بزنی بعد اینو هلم شنگی چرا اندختی خودت تو زدی به ناخوشی خب ناخوش همه یالا خوب شدم زبرشون خست خستم تنها برم شما ده تقنیم ای بابا اصلا آقاشون فرمان کاریجی دوم نداشت خود تنها برو هر کاری هم میخوای بکنی باش برو بکن اما اینم بیت بگم آن جلال کسی نیست که به این صادیگی رو نم پس بره من پیدرشو در بیارم باهارمه باهارمه از این کاره این خریته خریته خودتی ها جد آباده آقا میدم چون؟ یک دفعه دیگه همچه عربیمان بزنی همچی میزنم توی گوشت که بر مکسیم من همچیم آقایون، زکت آقایون، خجارات بکسیم از سماها بعیده سما داتون نفر رفیق هستیم تو این یه حرف نزم مرکی که آب زیرقای ادارده هست نفر میدم آقا، خیلی بیشتر بیشتر اه، اه، اه بگیر سهن، سهن، سهن، یروانجا که رفم از لطف داوود نرفم زیبایی را به سلامت به بطن باز میکنم کلوه این لازم داری تفیدها بیا ببینم نگا کن. از اون بار گوش کی بچو هر نورمری این هم اون که روزهای اول ازدواج گرفتیم، بیرفتیم که دو بیتش خونده میشه ای روی ماه منظر تو نوبهار حوز خال و خط تو مرکز لطف و مدار حوز سلام سلام جناب گلشنی قربونه برم چیانم آقا لفت کردی سنیزدی خواهش میکنم بعد نیستان هم دولا بهترم آنیزم بهترم خواهش میکنم جان جدی میگی ببینم تحقیق کردی باشه باشه عزیزم الان میام شهش شهش اومدم عزم. چی میگفت میگه خبر خوشباره دارم کجا خوبی نار بخوریم بعد داره تعریف کنه. از این شوخیه با من میکنه کتما کجا همینجه تو راه روی یعنی از محمد خبری شده چه میدونم اینم که هم تو سرش انداخ پای رفت نمیدونم چرا اینقدر دلم شعور میزنه نه نمک نه آب لیمون چطور؟ تو آوردی اینجا بنا آب لیمون و نماز و فلفل بدی یا میخوای حرف بزنی؟ حرف بزن منم چی میخواه بگی؟ سردبیر پیغون داده که از امروز میتونی شروع کنی به نیویزی بی خود کرده؟ چطور شد حالا درسوز ماهن شده؟ میگه به نیویز بیار چاپ کنه؟ جلا به این باز که داری عصبانی میشه بعدی بیران میگی؟ درو بی... معلومه میگم شاید حالا فهمیده که دست به قلم داری و میتونی بنویسی ها؟ خب بنویس از نرگس و محمد بنویس بلند، گوتا، مقاله، داستان، رومان، هرچی دوست داری بنویس از واقعیت ها بنویس باید واقعیت رو بنویسم باید واقعیت رو بفهمم باید بفهمم تو دنیا چی میگذره باید بفهمم دور برای من چه خبره کجا دارم زندگی میکنم باید بفهمم باید بفهمم هلی هر چیز صحیح میکنم بفهمم نیم فهمم هر محمد رو خبرم محمد اومده اومده، الان سه روزه شرخی میکنیم؟ نه، رفتن در خونش دیدن زنش از اونجا رفته ایچ، اشتباهی مچردی قرن کجاست؟ یه استرادگاه تو که هرچه تاشو خوش با طلاق، خوش خوش بریم تو را مهمم Vad ska